گر من از باغ تو یک میوه به چینم چه شود؟ پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟ یاربن در کنف سایه آن سرو به بلند گر من سوخت یک دم بنشینم چه شود؟ آخری خاتم جمشیده همایون آثار گرفتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود؟ واعز شهر چو مهر ملک و شهنه گذید من اگر مهر نگاری به گزینم چه شود عقلم از خانه به در رفت و گر می این است دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می تا چه به پیش آید از اینم چه شود خاجه است که من آشقم و هیچ نگفت حافظر نیز بداند که چونینم چه شغل